داستان سلباس. در روزگارای قدیم پادشاه و ملکه ای توی سرزمین بزرگ و مختدر حکومت می کردن. اینکه اسم این پادشاه و ملکه چی بود هیچ کس چیزی نمی دونه. اما اسم تنها پسر اونها زیگورد و نام دخترشون لینیک بود. این دوتا بچه به خاطر زیبایی و فراست و تیزفوشیشون زبان زد مردم کشورشون بودن. این خواهر و برادر فقط یک سال با هم فاصله سنی داشتن و خیلی هم به هم علاق مند بودن و همدیگر رو دوست داشتند. حتی طاقت یه لحظه جدایی از هم را هم نداشتند. وقتی پسر و دختر پادشاه بزرگ شدند، پادشاه خونه مستقلی همراه با تعدادی خدمتکار و کالسکه های مطمئن در اختیارشون گذاشت تا در نهایت آرامش به زندگیشون ادامه بدن. پادشاه و ملکه هم سالها با خوشی و خوبی در کنار هم زندگی کردند. بعد از سالها ملکه بیمار شد. و این رو میدونست که اصلا حالش خوب نمیشه. یه روز ملکه رو به پادشاه کرد و گفت دو تا قول به من بده یکی اینکه اگه بعد از من دلت خواست که ازدواج کنی قول بده که همسرت رو از بین اهالی یه شهر کوچیک، یا یه جزیره دور افتاده انتخاب نکنی. سعی کن با شاهزاده خانم یه سرزمین بزرگ ازدواج کنی. کسی که با آداب و معاشرت زندگی اشرافی آشنا باشه. و دوم اینکه که قول بده که سایت همیشه بالای سر دختر و پسرمون باشه و هیچ از اونها قافل نشی. چون در آینده مایه شادی و افتخارت میشن. ملکه بعد از گفتن این جمله ها چند ساعت بعد از دنیا رفت. پادشاه از مرگ همسرش انقدر غمگین شد که حتی دل و دماغ رسیدگی به امور کشورش رو هم نداشت. آخرش یه روز نقص وزیر به پادشاه گفت علا حضرت مردم از نابسامانی امور گلمندن به نظرم بهتره به خاطر اداره امور مملکت هم که شده قم و سر رو کنار بذارید. پادشاه جواب داد. میدونم اون چه که میگی به خیر و صلاح منه. من خودم هم زمزمه هایی در مورد نابسامانی امور از این امور شنیدم. فکر می کنم اگه دوباره ازدواج کنم به نفع کشورم میشه. هرچند که من تا آخر عمر سوگوار همسر از دست رفتم هستم. همسرم هم تو آخرین لحظات عمرش به من پیشنهاد کرده و گفته. که اگه میخوام ازدواج کنم باید همسری برای خودم انتخاب بکنم که از اهالی یه شهر کوچیک یا اهل جزیره دورافتاده نباشه به خاطر همین قضیه گروهی به سرپرستی نخست وزیر انتخاب شدند تا به دربار پادشاههای بزرگ برن و برای پادشاه یه شاهزاده خانوم شایسته انتخاب کنند. اما کشتی که این حیعت سواره بر اون بود بعد از چند روز گرفتار طوفان و مه قلیزی شد و اونها یک ماه تمام تو دریا سرگردون بودن. آخرش هم طوفان و مه فروکش کرد. اونها تو فاصله نچندان دور یه جزیره ای رو دیدن و بلافاصله فاصله به سمت اون جزیره حرکت کردند. کشتی نزدیک ساحلش ننگر انداخت. هرچند اونها اسم جایی رو که کشتی اونجا لنگر انداخته بود رو نمیدونستن. اما حداقل این رو میدونستن که اونجا آب و میوه برای رفع تشنگی و گرسنگیشون پیدا میشه. نخست وزیر از همراهاش خواست که توی کشتی بمونن و خودش سوار بر یه قایق کوچیک به سمت جزیره حرکت کرد تا ببینه آیا اونجا متروکه است یا کسی هم اونجا زندگی میکنه. وقتی نخست وزیر قدم به روی اون جزیره گذاشت صدای آهنگ دلنشینی رو شنید. سرش رو به سمت صدا چرخوند. زن بسیار زیبایی رو دید که روی سپایهی نشسته و اود میزنه و دختر کوچیکی هم کنار اون آواز میخونه. وقتی به به چند قدمی اونها رسید، معدبانه سلام کرد و زنم بعد از اینکه با لحن صمیمی جواب سلامش رو داد، از نخست وزیر علت اومدنش به اون جزیره رو پرسید. نخست وزیر هدفش از این سفر رو برای اون زن بیان کرد. اون زن جواب داد: من هم توی سرزمین پادشاهی زندگی میکنم. زمانی من با پادشاه مقتدری که توی اون سرزمین حکومت میکرد ازدواج کردم. تا اینکه دزدای کشتی به اینجا حمله کردند و پادشاه رو به قصر رسوندند. مردم زیادی رو هم کشتند. اما من موفق شدم جون خودم رو نجات بدم و همراه دخترم تو این مکان دور افتاده مخفی بشم. دختر کوچولو در حالی که به های مادرش گوش میداد با لحن آرام به مادرش گفت: آیا تو همه حقیقت رو داری میگی؟ مادرش با لحنی عصبانی جواب داد مگه قولی رو که داده بودی یادت رفته. اون وقت دخترش رو به شکلی که نخست وزیر متوجه نشه؟ نیشگون گرفت. نخست وزیر در حالی که از شنیدن ماجرای زندگی این زن متاثر شده بود، از اون پرسید: اسم شما چیه؟ زن جواب داد: اسم من بلوور و اسم دخترم لوفره. بعد هم اسم نخست وزیر و پادشاه رو ازشون پرسید. بعد از معرفی، اونا درباره چیزهای زیادی با هم صحبت کردند. و اون زن تو صحبتاش با نخست وزیر خودش رو یه آدم بسیار آگاه و عالم نشون داد. نخوص وزیر اون رو همسر شایستهی برای پادشاه تشخیص داد و بلافاصله فاصله از اون درخواست ازدواج با اربابش رو کرد. اما اون زن در جواب نخست وزیر خودش رو لایق همسری پادشاه ندونست و اون رو رد کرد. این جواب نخوص وزیر رو بیشتر از هر زمان دیگه‌ای مصمم کرد تا در تقاضای خودش پافشاری کنه. آخرش نخست وزیر تونس موفقیت اون زن رو بگیره و با خوشحالی از موفقیت خودش از اون زن درخواست کرد که هر زودتر آماده ی سفر به سرزمین اونها بشه. اقبت نخستوزیر مادر و دختر رو سوار کشتی کرد و لنگر رو برداشت بادبونها برافراشته شدند و کشتی همراه با نسیم ملایم راه افتاد حالا دیگه مه دریا فروکش کرده بود اونها به پشت سرشون نگاه کردند تونستن جزیره رو به راحتی ببینن. جایی که کاملا مطروف بود و هرگز قابل زندگی کردن هم نبود سفرشون خیلی طولانی نبود اونها بعد از 6 روز تونستن به مقصد برسن و بلا فاصله راهی پایتخت شدن. نخسوازی اول پیکی رو به دربار فرستاد تا قبل از ورودشون به قصر پادشاه رو از اونچه که اتفاق افتاده با خبر کنن. وقتی نگاه پادشاه به این مادر و دختر زیبا افتاد، تموم غم و قصه هاش رو فراموش کرد. فوری دستور برگزاری مراسم ازدواج رو داد. پادشاه از بس خوشحال بود که کاملا فراموش کرده بود از ملکه آینده کشورش اصل و نصب اون رو بپرسه. در واقع پادشاه محو زیبایی اون دو نفر شده بود که بلافاصله هایم به سران و شخصیت‌های عالی رتبه کشورهای همسایش فرستاد اما فراموش کرد که از دو تا فرزند خودش برای شرکت تو مراسم ازدواج دعوت کنه. پادشاه بعد از ازدواج برای آب خوردن هم از ملکه اجازه می گرفت در تمام تصمیماتی که می گرفت با زنش مشورت میکرد ملکه تو همه جلسات شرکت میکرد حتی درباره اعلان جنگ یا صلح هم از ملکه نظرخواهی میشد اما یکی دو ماه بعد شک و تردید تمام ذهن پادشاه رو به خودش مشغول کرد پیش خودش فکر کرد آیا انتخاب همسرش توسط نخست وزیر انتخاب عاقلانه بوده یا نه؟ بعد همون متوجه شدش که بچه هاش تک و تنها تو خونه خودشون زندگی میکنند و هرگز هم به دیدن مادر ناتنیشون نمیان. همیشه همینطور بوده. وقتی کسی چشم و گوشش رو روی همه چیز میبنده بنده زمانی که به خودش میاد متوجه خیلی از چیزها میشه که قبلا به سادگی از کنار اونها گذشته. به خاطر همین گروز پادشاه متوجه شد که اعضای دربار یکی بعد از دیگری و بدون اطلاع اون دارن دربار رو ترک میکنن و یه قیبشون میزنه. اولش پادشاه افراد دیگه ای رو جایگزین اونها میکرد. اما اون زمان از حوادثی که به طور ناگهانی توی دربار اتفاق میفتاد پادشاه احساس نارضایتی کرد و این فکر تو ذهنش اومد که شاید ملکه توی این کارها دست داشته باشه. این وضعیت همچنان ادامه داشت تا اینکه یه روز ملکه پادشاه گفت به نظرم بهتره به گوشه و کنار سرزمینت سری بزنی تا ببینی آیا والیاب و فرمانده های به تو خیانت میکنن یا نه؟ در زم لازم نیست دیگه نگران اداره امور کشور باشی من خودم مراقب همه چیز هستم پادشاه اول قصد نداشت که تن به این مسافرت بده اما در برابر خواسته همسرش تا به مقاومت نداشت و نمیتونست با نظر اون مخالفت کنه. به خاطر همین پادشاه دستور داد که بهترین کشتیش رو آماده کنن ولی با این حال باز هم آشفته و دلنگران بود. شب قبل از سفر به دیدن فرزندانش رفت. مدتی بود که پادشاه از دختر و پسرش که تک و تنها تو قصر خودشون زندگی می هیچ خبری نداشت. اون از دیدن پدرشون خیلی خوشحال شدن. به گرمی ازش استقبال کردن چون پدرشون رو خیلی دوست داشتن و خیلی حرفها داشتن که باید بهش میزدند پادشاه بعد از کلی گپ زدن با دختر و پسرش به اونها گفت بچه های عزیزم اگه من از این سفر زنده برنگشتم، نگشتم فکر میکنم موندن شما هم اینجا به صلاحتون نباشه. اگه اینطوریه بلا فاصله جاده منتهی به سمت شهر رو پیش بگیرید تا اینکه به یک کوه برسید. وقتی بالای اون کوه رسیدید، به یک گذرگاه هم میرسید که کنار یه جنگل انبوه قرار داره. این مسیر رو ادامه بدید تا به دو تا درخت که یکی قرمز و اون یکی سبزه برسید. البته این دو تا درخت از جاده فاصله زیادی دارن. لابلاشون بیشزاری هست که از چشم مخفی شده. خیلی دقت کنید. تا این درخت رو گم نکنید. اون وقت هر کدومتون تو تنه یکی از این درختها مخفی بشید. مطمئن باشید که از دست همه ی در امان خواهید بود. پادشاه بعد از گفتن این حرفها از بچه هاش خداحافظی کرد و قمگین و ناراحت سوار کشتی شد. دو سه روز اول سفر دریا آروم بود. از بادهای شدید و طوفان هم هیچ خبری نبود. اما یه دفعه طوفان شدیدی شروع شد آسمون برق زد و غرید با وجود تلاش زیاد ملوانا کشتی به صخره بزرگ سنگی برخورد کرد و قرق شد. هیچ کس هم نتونست جون سالم به در ببره. همون شب شاهزاده زیگور پسر پادشاه خواب دید که پدرش با لباسهای خیست کنارش ظاهر شد و تاج پادشاهی رو رو سر اون گذاشت. و بعد هم به آرونی اتاق رو ترک کرد. شاهزاده هراسون از خواب بیدار شد و خوابش رو برای خواهرش تعریف کرد. خواهر و برادر هر دوتا به این نتیجه رسیدند که حتما پدرشون مرده و باید بدون لحظه ای درنگ دستور پدرشون رو اطاعت کنن. به خاطر همین بلا فاصله جواهرات خودشون رو جمع کردن و چند دست لباس برداشتند و شبانه دور از چشم همه خونهاشون رو ترک کردند. اونها با عجله به سمت شرق رفتن. بعد از مدتی به همون کوهی که پادشاه بهشون گفته بود رسیدن. زیگورد پشت سرش رو نگاه کرد. ناگهان هم متوجه شد که نامادریش داره اونها رو تغییب میکنه. اون تغییر شکل داده بود و خودش رو به صورت یه اجوزه پیر درآورده بود. بین اونها و نامادری یه منطقه پر از درخت بود. زیگور تصمیم گرفت اونجا رو آتیش بزنه و این کار رو هم کرد. بعدش هم خواهر و برادر با عجله خودشون رو به گذرگاهی رسوندن که می رسید به دو تا درخت قرمز و سبز. بعد از اینکه درختها رو پیدا کردن هر کدومشون تو تنه یکی از درختها مخفی شدن. همون زمانها ها پادشاه مقتدری تو سرزمین یونان حکومت می کرد که خیلی هم بود. هرچند نام اون فراموش شده بود اما دوتا فرزند داشت که یکی دختر و دیگری پسر بود مثل پنج آفتاب زیبا بودن. پدرشون به وجود اونها افتخار میکرد شاهزاده بعد از اینکه به سن نوجوانی رسیده بود در یکی از ماهای تابستون از پدرش خواسته بود که علیه پادشاه کشور همسایه وارد جنگ بشه در واقع اون خواسته بود تا نام و اعتباری برای پدرش کسب بکنه اما تو زمستون دسترسی به غذا و پیدا کردن اسب های تازه نفس کار مشکلی بود این بود که لشکر این پادشاه پراکنده شد و شاهزاده دست از فادرا سر به سرزمینش برگشته بود تو یکی از این جنگ ها اون درباره زیبایی خارق العاده شاهزاده خانوم به نام دنیک خبرهایی شنیده بود و تصمیم گرفته بود که هر طور شده با این شاهزاده خانم ازدواج کنه. اون وقت بلوور که به علم جادوگری هم آشنا بود لباسهای زیبایی تن دخترش کرد و شاهزاده رو که به پایتخت نزدیک میشد به قصر خودش راهنمایی کرد بلوور در قصر خودش به گرمی از شاهزاده خانم استقبال کرد و زمانی که ضیافت شام به پایان رسید اون از کشته شدن شوهرش خبر داد و به اون گفت دیگه کسی جز خودش نیست که اداره امور کشور رو به عهده بگیره. شاهزاده ازش پرسید اما شاهزاده خانم لینیک کجاست؟ ملکه جواب داد همینجاست و دخترش رو که پشت سرش نشسته بود به شاهزاده معرفی کرد. شاهزاده نگاهی به اون انداخت و بعد هم ناراحت شد. شاهزاده خانم خیلی زیبا بود اما رنگ به چهره نداشت. وقتی ملکه به شاهزاده نگاه کرد از چهره اون فهمید که چی تو ذهنش میگذره. اون وقت به شاهزاده گفت شما نباید از چهره رنگ باخته اون تعجب کنید چون هنوز به خاطر از دست دادن پدر و مادرش سوگواره. شاهزاده فکر کرد و گفت این مسئله دهنده یه قلب مهربونه. وقتی این دوره غم و اندوف به پایان برسه دوباره زیبایی سابقش رو به دست میاره. به خاطر همین بلا فاصله از ملکه تقاضا کرد که رضایت خودش رو برای نامزدی اونها اعلام کنه چون قرار بود مراسم ازدواج تو کشور خود شاهزاده برگزار بشه ملکه هرگز انتظار نداشت که همه چیز اینجوری با موفقیت به پایان برسه این بود که بلا فاصله مقدمات سفرش رو آماده کرد و خودش هم با این زوج جوون همراه شد تا مطمئن بشه که همه چیز بی و نقصه اما شاهزاده تصمیم گرفته بود که هیچ کس توی این سفر غیر از لوفر که فکر میکرد لنیکه همراهش نباشه اونا از ملکه خداحافظی کردن و سوار کشتی شدن اما مدتی بعد دوباره دریا طوفانی شد و ناخدای کشتی از مسیر هستیش خارج شد سرانجام اونا به جزیره رسیدن که براشون ناآشنا بود شاهزاده دستور داد یک قایب به آب بندازند تا خود اون شخصا سری به جزیره بزنه و از نزدیک موقعیت اون محل رو بررسی کنه همونجا بود که با اون دوتا درخت زیبا روبرو شد این دوتا درخت با همه درختهایی که توی یونان رشد کرده بودن متفاوت بود شاهزاده یکی از ملوانانش رو صدا زد تا اونها رو قطع کنه این کار رو انجام دادن و بعد هم تنه اون دو تا درخت رو به عرشه کشتی منتقل کردن چون آسمون صاف بود و طوفان هم فروکش کرده بود، بدون روبرو شدن با خطری به یونان رسیدن خبر ازدواج اون با یه شاهزاده خانم زیبا سراسر سرزمین اون پیچید و همه شهر به افتخار ورود اون و نامزدش آزیماندی شده بود. پادشاه و ملکه پای پله پله‌های ورودی قصر ازشون استقبال کردند. عروس خانم به اتاق مخصوص زنا راهنمایی شد، محلی که باید تا روز ازدواج اونجا اقامت کرد. شاهزاده هم به اتاقش رفت و دستور داد که درختاش رو هم پیش اون بیارن. صبح روز بعد، شاهزاده به خدمتکاراش دستور داد که همسر آیندهش رو به اتاقش بیارن. زمانی که اون رو به محل اقامت شاهزاده راهنمایی کردن شاهزاده به اون مقداری نخ ابریشم داد تا سه لباس به رنگ قرمز و آبی و سبز به و این ستا لباس باید پیش از مراسم ازدواج آماده میشد اول باید لباس آبی رنگ بافته میشد بعد لباس قرمز و آخر سر هم باید لباس سبز بافته میشد لباس آخری باید از همه باشکوهتر میشد چونکه شاهزاده قصد لباس سبز رو تو مراسم ازدواج بپوشه وقتی لوفر به انبوه نخهای ابریشم نگاه میکرد از اونجایی که با هنر بافندگی آشنا نبود شروع کرد به گریه کردن چون از اون واهمه داشت که همه چیز برملا بشه چون لنیک علاوه بر اینکه زیبا بود هنر بافندگی اون هم زبانزد خاص و آم بود لوفر زار زار گریه میکرد. زیگرد که داخل تنهی درخت مخفی بود با شنیدن صدای گریه های لوفر دلش به حال اون سوخت و خواهرش لینیک رو صدا داد و گفت ببین خواهر لوفر داره گریه میکنه. بهش کمک کن خواهش میکنم. لینیک جواب داد مگه ظلمی رو که مادرش در حق ما کرده فراموش کردی؟ تقصیر اون بود که ما اینجوری آواره شدیم. اما لینیک قلب مهربونی داشت و در نتیجه از داخل تنه درخت بیرون اومد و نخای هم رو از دست های لوفر گرفت و شروع به بافتن کرد. طولی نکشید که لینیک لباس آبی رنگ رو بافت. حتی هاشیه هاش رو هم گلدوزی کرد. بعد هم لینیک قبل از برگشتن شاهزاده به مخفیگاهش رفت. شاهزاده نگاهی به لباس انداخت و گفت اوج شاهکار هنر بافندگی رو میتونیم تو این لباس ببینیم. به نظرم لباس قرمز رنگ خیلی بهتر از این یکی میشه. بعد هم شاهزاده به نشانه احترام در برابر لوفر که فکر میکرد همون لنیکه تعظیم کرد و از اتاق بیرون رفت. لوفر پیش خودش امیدوار بود که شاهزاده بعد از دیدن این لباس آبی رنگ دیگه از اون نخواد که دوتا پیراهن بعدی رو هم ببافه. اما بعد فهمید که شاهزاده روی خواستش خیلی مصممه و میخواست که این کار تمام و کمال انجام بشه. لوفر باز دوباره زانوی قم بغل گرفت و دوباره شروع به گریه کرد. دوباره زیگرد صدای هقه هقه گریه های اون رو شنید و از خواهرش لنیک خواهش کرد که باز هم به اون کمک کنه. لینیک هم دلش به اومد و این بار لباس دوم رو هم براش بافت. به علاوه برای این لباس هم سنگ تموم گذاشت هاشیه های اون رو هم با نخهای تلایی گلدوزی کرد. وقتی کار بافتن لباس قرمز هم تموم شد، دوباره به مخفیگاهش برگشت و چند لحظه بعد هم شاهزاده از راه رسید. شاهزاده به لوفر گفت، میبینم علاوه بر هوش و که داری خیلی هم فعال و کوشایی. این لباس به حدیق حد زیبا و قشنگه که انگار پریام رو بافتن، اما از اونجایی که لباس سبزرنگ باید از این دوتا هم باش رو در و زیباتر بشه، سه روز فرصت میدم تا اون رو هم ببافی. بعد از اینکه لباس رو بافتی، اون وقت بلا فاصله مراسم ازدواج برگزار میشه. وقتی که شاهزاده داشت این حرف ها رو میزد، لوفر به یاد رفتار ظالمانه خودش و مادرش افتاد که در حق لینیک کرده بودن. اون با خودش گفت اگه لینیک بفهمه آیا از سر من میگذره و برای بار سوم به من کمک میکنه؟ شاید هم لینیک گذشته رو فراموش نکرده ولی خواهش های برادرش ممکنه یه بار دیگه هم دره اون رو به رحم بیاره و به من کمک کنه. این بار هم لینیک از مخفیگاهش بیرون اومد و دست به کار بافتن لباس سوم شد. وقتی اون سرگرم بافتن لباس بود، نور خورشید و پرت مهدب به نوک سوزن میتابید و ننیک با چنان نقش و نگار و طرح و زیبایی اون رو می بافت که نظیر اون رو هیچکس ندیده بود بافتن این لباس وقت زیادی برد صبح روز سوم سو در حالی که اون آخرین کوک های لباس رو میزد و آخرین نقشه های گل رو روی لباس گلدوزی می کرد شاهزاده وارد اتاق شد لنینک بلافاصله سر جای خودش بلند شد و سعی کرد خودش رو به مخفیگاهش برسونه اما کلاف نخ ابریشم به پاش پیچید و اگه شاهزاده اون رو نمی گرفت، حتما روی زمین میافتاد شاهزاده گفت من خودم فکر میکردم که اینجا اتفاقاتی میفته حالا بگو ببینم تو کی هستی اهل کجایی لنینک اسم خودش و داستان زندگیش رو برای شاهزاده تعریف کرد وقتی حرفاش به پایان رسید، شاهزاده با عصبانیت رو به لوفر کرد و گفت تو به خاطر این شرارت و دروخ که به من گفتی لایق مرگی. اما لوفر پیش پای شاهزاده زانو زد و ازش طلب بخشش کرد. اون گفت همش تخصیل مادرم بود. این اون بود که منو به جای دنیک به تو معرفی کرد. تنها دروغی هم که من به شما گفتم درباره این ستا لباس بوده، که فکر نمی‌کنم به خاطر اون مستحق مرگ باشم لوفر همچنان در حال التماس کردن به شاهزاده بود که شاهزاده زیگورد از مخفیگاهش بیرون اومد و وارد اتاق شد اون از شاهزاده یونان تقاضا کرد که لوفر رو اف کنه شاهزاده هم به شرطی این تقاضا رو قبول کرد که شاهزاده زیگورد هم با ازدواج شاهزاده یونان بالنیک موافقت کنه تنیک جواب داد تا زمانی که نامادریم نمرده این کار رو نمی کنم چون عامل همه ی و آوارگی های ماست لوفر به اونها گفت که بلوبر همسر پادشاه نبوده بلکه یه قول بوده که اون رو از قصف کشور همسایه دزدیده بوده و به عنوان دخترشون رو بزرگ کرده در زم، علاوه بر اون یه قول بیشا خودم بوده یه جادوگر خبیس هم بوده که باعث غرق شدن کشتی پدر زیگرد و لینیک هم شده. و همینطور اعضای دربار را هم که قیب میکرده در واقع اون میخواست با از بین بردن تمام مردم این سرزمین همه جا رو پر از گول و حیولا و جادوگر کنه. شاهزاده زیگرد و شاهزاده یونان بعد از شنیدن حرفای لوفر بلا فاصله یه سپاه بزرگ تشکیل دادند و به سمت قصر بلوور حرکت کردند اونا مثل برق به اونجا حمله کردند. بولویر قافلگیر شده بود وگرنه میتونست همه اون مردای قدرتمند و شخصیتهای دربار رو بدزه و از بین ببره به راحتی اسیر شد و روز بعد تو میدون شهر به دار مجازات آویخته شد بعد هم هر دو شاهزاده به سمت یونان حرکت کردند حالا دیگه لنیک دیگه هیچ عذر و برای به عقب انداختن مراسم ازدواج نداشت با شاهزاده یونان ازدواج کرد زیگورد هم با شاهزاده خانم ازدواج کرد و اما لوفر هم مثل یک خواهر صمیمی در کنار لینیک باقی موند تا اینکه اون هم با یکی از اشراف ساده ها ازدواج کرد و هر سه جوان با خوبی و خوشی در کنار همدیگه زندگی کردند کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی t.me/mehrandosti t.m e/m e h نشانی وبلاگ ما m e s t مهران دوستی کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد استانی